سگی برای شکار مرده شروع کردم به بررسی نقشه خودم در ماجرا و با توجه به جوابهایی که گروه من رینک از آن طبح کار گرفته بود موقعیت فعلیم را به سرعت و به اجمال ارزیابی کردم به عبارت دیگر داشتم درباره مشتریم فکر می کردم. همان زن زیبای داری که می توانست آن همه آب جانبار کند او این طبه کارهای بی سر و پارا برای همان کاری عجیر کرده که مرا برای آن عجیر کرده. یعنی برای دزدیدن همان جسد. اصلا قابل فهم نبود. ما عملا بر سر دزدیدن یک جنازه با هم کورس گذاشته بودیم. و آن یارو که روی کفی درازکش و دست بسته بود قطعا بیش از آن چیزی که قرار بوده به درد سر افتاده بود. رینج به سمت محفظه برگشت تا باز سینجی می بکند راحتی تکاره پسروار گفت؟ بله جز این چه می توانست بگوید؟ مادر رینک گفت؟ حالا بذار یه خورده راحت تررت کنم. گروهان کفی را بیرون کشید طوری که میشد تا سینه طبکاره را دید؟ راحت تکاره به آرامی سر تعییدی تکان داد. حالا بگو قرار بود با جسد اون فاحشه لعنتی چیکار کنین؟ اون خانم مایدار با اون چی کار میخواست بکنه؟ طبع با صدای یک پسر گروه کر آواز خواند که قرار بود ساعت ده به یه بار زنگ بزنیم و سراغ آقای جونز رو بگیریم و اون وقت اون به ما بگه چی کار کنیم؟ رینک گفت آقای جونز کیه؟ طبع گفت همون یارو که گردنش به کنفتی شیر آتیش نشوری بود گروهبان گفت خب پسر خوب اسم اون بار چی بود؟ کلوبه اسیس تو خیابون ادی رینک گفت الان یازده است تلفن روی میزی بود که پاچوبی پشتش نشسته بود سمت تلفن رفت اطلاعات را گرفت و بعد هم کلوبه اسیس را با آقای جانز میخوام صحبت کنم چند لحظه منتظر ماند و بعد گفت ممنون و گوش را گذاشت بعد به طرف یخچال رفت آقای جونزی اونجا نبود تو که نمیخوای وقت بیشتری را با مرده ها بگذرونی میخوای؟ طبع گفت نه نه شاید از بس منتظر مونده خسته شده رفته اون گفت اگه بهش زنگ نزدیم یعنی که معامله فسخ شده و اینطور فرض میکنه که ما نتونستیم جسد و گیر بیاریم یه چیز دیگه هم گفت چی؟ گفت گوه نزنیم خیلی هم جدی بود باید به حرفش گوش میدادین چون شما واقعا گه زدین سیمونو کردیم از کجا میدونستیم که جسد عوضی رو داریم میبریم اونا به ما گفتن که جسد تو کدوم محفظ است با همه ی جزئیات منظورم اینه که چطور ممکنه اشتباه کرده باشیم رینک گفت خیلی ساده است من شما دلقکها را واسه گردش بردن یه سگم استخدام نمیکنم بعد رو به پاچوبی کرد و گفت من نمیدونم جییر کننده های این قول چوم آقا چطور ممکن بوده بدونن جسد تو کدوم محفظه است؟ پاچوبی گفت از قرار معلوم که نمیدونستن چون اینا جسد عوضی رو دیدن حالا که صحبت جسد عوضی شد من می جسد او مطلقه الکلی خودکشی کرده هرچی زودتر برگرده اینجا رینگ به تکاری که روی صندلی کنار رفیق تازه از هوش رفتش نشسته بود گفت؟ جنازه کجاست؟ طبخ گفت گفت میتونم حرف بزنم؟ اصلا نمیخواست کاری بکند که گروهبان عصبانی شود. میخواست عوضا همانطور که هست بماند. چون هنوز که دست بسته روی کفی کن یا بیهوش کف اتاق نیفتاده بود. رینک گفت حالشم داری حرف میزنی؟ فقط جواب منو بده. طبخ که از شنیدن صدای خودش شگفت زده بود گفت آه درسته. سعی کرد دوباره صدای خودش را بشنود و بنابراین گفت چی میخواید بدونین؟ رینگ گفت مثل اینکه که علاوه بر حماقت ناشنوایی هم تو خونوادتون موروسی آره؟ من میخوام بدونم اون جنازه کجاست آشغال کله؟ تو صندوق عقب ماشینمون ماشین کجاست؟ تبکاره گفت سر نمش پارک کردیم رینک گفت برو اون جسد بیار باشه، بعدش چی؟ گروهبان گفت منظورت چیه که بعدش چی؟ برو برش گردون اینجا احمق تبکار مات و مبهود گفت شما میخواییم بذاری من خودم تنهایی از اینجا برم بیرون؟ حرفی که با گوش خودش شنیده بود باورش نمیشد رینک گفت چرا که نه؟ برو بیارش تو یه احمقی اما فکر نکنم اونقدر دیوونه باشی که بخوای بزنی به چک من آدم ناتوی هستم. تو هم که داره نمیخواد اون روی سگ منو بیاری بالا. تازه داره ازت خوشم میاد. برو اون جنازه لعنتی رو وردار بیار همین حالا. طبع با شرمندگی گفت. بخشه. نمیدونم چرا شرمنده بود اما بود. رفتار آدمها رو نمیشود پیش بینی کرد. چند دقیقه بعد طبع در حال خرکش کردن کیسه ی هایی که جسد آن متعلق توش بود برگشت. عین هو سگ شکاری بود که اردک مرده را برای اربابش می‌بورد. رینگ گفت: بچه‌ای بحالی هستی. جنازه را تحویل پاچوبی بده و ما تحت تو به چشمم به صندلی. کار گفت: ممنون رئیس. رینگ گفت: اینم یه جسد واسه تو پاچوبی. مسئله رو حل شده فرض کن. وقت رقص پاچوبی داشت پای خودش را کلان از ماجرا می کشید بیرون چه رفیقی البته که 250 دلار پول نقد بی تاثیر نیست یک آدم یک پاچوبی با این پول میتواند در سانفرانسیسکو وقت زیادی را صرف رقص کند گفتم خب من باید برم پی کار خودم این ماجرا خیلی جالبه ولی منم باید به فکر امرار معاشم باشم گوروخان رینگ گفت شوخی میکنی؟ و بعد بفهمی نفهمی آهی هم کشید و ادامه داد؟ تو میتونستی کاراگاه خوبی بشی کارت اگه این همه وقت تو صرف خیال بافی نمیکردی. خب دیگه دنبال حرفش را نگرفت. من همیشه برای او مایه یه بودم رینگ نمیدانست که من بخشی از عمرم را در بابل سر می کردم. از دید او من فقط یک چلمن خیال باف بودم من هم بی خیالش بودم. میدانستم اگر راجع به بابل چیزی بگویم نمیتواند آن را حسب کند. او که سرش در این افکار نیست، پس خیالش باش. برای او من یک چولمن بودم و این اهمیتی نداشت. بابل خیلی بهتر از این بود که پلیس باشم و مجبور باشم حاضر و آماده به جنگ جرم و جنایت بروم. به سمت در به راه افتادم. آن بیرون یک جسد توی ماشین بود که باید تحویلش می‌دادم. اول یک مدتی باید گشت می‌زدم. و به ماجرا فکر می کردم. با ورود آن سه طبخ کار قدری پیچیده شده بود. باید وقتی می گذاشتم و کل ماجرا را توی ذهنم حلاجی می کردم. باید مسیر خودم را درست انتخاب می کردم. پاچوبی گفت. به امید دیدار خصوصی. رینک گفت. سر تو کار خودت باشه و اینقدر چلمن نباش. از آنجا نگاهی به طبخ دست بسته روی کفی انداختم. همانجا دراز کشید و به سقف زده بود امروز روز خوبی برای او نبود. تبهکاری که روی صندلی نشسته بود بیافش طوری بود که انگار با بند تنبان باز وسط گشت و گذار با یک ادراه به گیرش انداختند تبهکار سومی هم کنار او کف اتاق دراز افتاده بود انگار شرکت برق به خاطر عدم پرداخت صورت حساب چراغهای طرف را خاموش کرده بود به گمانم به هوش که می آمد درباره دنبال کردن حرفه تبهکاری خوب فکر کرد مگر اینکه از کف پزشکی قانونی خوابیدن خوشش می‌آمد مرد کور ماشین پارک شده آن طرف خیابان روبروی پزشکی قانونی با جسد آن مقتول توی صندوق عقبش منتظرم بود آن جسد حواله دریافت 500 دلار دیگر بود اما راز یک خورده پیچیده شده بود آن خانم مایدار دار آبجو چرا این سوتو تبه‌کار را برای دزدیدن همان جسدی اجیر کرده بود که قرار بود من بدستم اصلا معنا نداشت با این حساب کل ماجرا مثل های بچه های باوری شده بود و هر کسی می‌خواست از دیگران جلو بیفتد. اما عاقبت کار برای آن تبه‌کارها که توی پزشکی قانونی گیر افتاده بودند، خیلی هم بامزده نبود. گروه من رینچ زندگیشان را جهنم کرده بود. وقتی فهمیدم آن حرامزاده بدبخت را زنده زنده توی کن گذاشته، مو به تنم راست شد. فکر نمی‌کنم این کار را محض تفریح کرده بود. برای تفریح به نظرم تماشای بیسبال یا کار دیگری را ترجیح میداد. با این حال من به قدر کافی درباره آن الاق ها فکر کرده بودم. موضوعات مهمتری برای فکر کردن داشتم. با این جنازه کوفتی چه باید میکردم؟ ت قرار بود ساعت ده در آن بار با گردن تماس بگیرند اما وقتی من رینگ زنگ زد او آنجا نبود. قرار من با آبجو خور دار و گردن ساعت یک نیمه شب در گورستان آسایش الهی بود. حالا باید به این فکر می کردم که اقدام بعدیم چه باید باشد. آیا باید به قرارمان پایبند بمانم؟ این تنها شانس من برای دریافت آن پانصد دلار و اجاره دفتر و استخدام منشی و خرید ماشین و متحول کردن شیوه زندگیم بود. تا اینجای کار پانصد دلار یعنی نصف مبلغ را پرداخته بودند و سیصد دلار هم بابت هزینه های جاری داده بودند. هنوز پانصد دلار توی دستم بود و بنابراین از هر نظر جلو بودم. شاید باید جنازه را بر و می‌بردم توی خلیج میانداختم. و بیخیال ملاقات با آن آدم ها می و خودم را به قدر پانصد دلار به شرافت و انسانی نزدیکتر احساس می کردم. اگر حساب هر پنی را نگه می و قدر تک تکشان را می دانستم احتمالا می با همین پول هم یک جورهایی دفتر، منشی و ماشینی و پا کنم خیلی با کلاس از کار در نمی آمد ولی به هر حال بود معلوم نبود اگر به قرارمان عمل می کردم چه ماجرای عجیبی ممکن بود اتفاق بیفتد آدم های عادی که دو اده را برای دزدیدن یک جسد از پزشکی قانونی عجیر نمیکنند، این این بیمعنا بود و من هم نمی توانستم پیش بینی کنم که در صورت رفتن به گورستان و انجام ملاقاتم با آنها چه چیزی در انتظارم خواهد بود. شاید حتی سر قرار حاضر نشوند. با این اصاف چه و سالانها حالاتوی چین باشند. اما اگر هم سر قرار حاضر شوند من اصله دارم. و اگر بخواهند کلکی سوار کنند از پسشان برمیآیم. گردن از آن آدم های ترسناک بود. از سرشاخ شدم با او هیچ خوشم نمی آمد. اما شش تا سربی داشتم که خرچش کنم. هدفگیریم بد نبود و او هم هدف کوچکی نبود. گزینه های پیش روم اینها بود. بسنده کردن به 500 دلار موجود یا قمار کردن برای به دست آوردن 500 دلار دیگر. آن هم با آدمهایی عجیب و غریب. یک زن خرپول قاتل آبجو و یک راننده با گردنی به کلفتی یک گل بوفالو دستکم امکان انتخاب داشتم چند روز پیش کارم به تنه زدم به یک مرد کور و انداختن کاسه گداریش کشیده بود پولها رو از کف پیاده رو براش جمع کردم و کاسه را که دستش دادم پنجاه سنت کم داشت به نظرم کوره خیلی تیز بود چون بنا کرد به داد و بیداد که باقی پولم کو اینجا نیست. پول هم پس بده دزد پس فدرات. باید فلنگ را می‌بستم. چیزی که حالا به آن فکر می‌کردم خیلی جالبتر از چیزهایی بود که قبلن به آنها فکر می‌کردم. توصیف فرانسیسکو که یک عالم گدای کل نیست و خبر دهن به دهن می‌گردد. من چه کوفتی برای از دست دادن داشتم استارت که می زدم داشتم به این فکر می کردم تصمیمم را گرفته بودم می خواستم بروم جسد را تحویل بدهم چند دقیقه از ساعتی یاسته گذشته بود و تا موعد ملاقاتمان در گورستان آسایش الهی هنوز وقت داشتم برای همین تصمیم گرفتم یک خورده با ماشین گشت بزنم مدتها بود که ماشینی دستم نبود آمپر بنزین را نگاه کردم، سه چهار روم باک پر بود، تفریحی می شد، موتور روشن شد و حرکت کردم، به سمت مارینا به راه افتادم، رادیو را روشن کردم، هیچ وقت نشده بود با ترانه ی پسندی که قبلا نشنیده بودم دم بگیرم، گوش خیلی خوبی برای موسیقی دارم، ملودی ها را خیلی زود یاد می گیرم. این یکی از استعداد هام است، حیف که هیچ وقت یاد نگرفتم چطور آواز بخوانم یا ساز بزنم. اگر این کار را کرده بودم، شاید حسابی پیشرفت رفت می کردم و کارم هم بالا می گرفت. حسابی سرحال بودم، تصمیمم را گرفته بودم، داشتم به موسیقی خوبی گوش می کردم و لش فاهشهی هم توی صندوق عقب بود. در این روزگار و آدم دیگر چه انتظاری می تواند داشته باشد؟ یعنی دنیا در حال جنگ بود اما برای من همه چیز رو به راه بود هیچ گله نداشتم روز روز من بود از خیابان کلمباس که به سمت مارینا میراندم به این فکر افتادم که در بابل رهبر یک گروه موسیقی بزرگم و ایستگاه رادیویی ای شخصی خودم را دارم اعلام کننده برنامه ها می گفت سلام به شما اینجا ایستگاه رادیویی ای نازنین است صدای ما را از بلندای باغهای معلق بابل میشنوید بسیار خوش وقتیم که امشب با برنامه سی کارد و گروه موسیقی بزرگش در خدمت شما خواهیم بود و حالا این شما و این سیکارد من میگویم سلام گربه های رقاص بابل. این خدمت گذار صوتی شما سیکارد است که برای جانبخشیدن به رؤیاهایتان هایتان می نوازد و در اینجا با دو شیزه نعنادیرت نقم خان لذات ممنوع آغاز می کنیم. با آهنگ چشم های ایرلندی که میخندند واقعا داشتم نهایت لذت را از برنامه رادیویی می بردم تا اینکه فهمیدم ماشینی در تعقیبم است آبگوشت. ماشینی که تعقیبم میکرد یک پلیموس سدان سیاه مدل 1937 با چهار سرنشین سیاه بود. همهشان سیاه سیاه بودند و همهشان لباس تیره تنشان بود. ماشین مثل یک تکه زغال با دو چراغ جلو بود و قطعا داشت مرا تعقیب میکرد. این آدم‌ها دیگر کی بودند؟ سر و از کجا پیدا شده بود؟ آن چند دقیقه کیفی که با برنامه‌ی رادیویی کرده بودم نیست و نابود شد. چرا زندگی به همان سادگی که میتوانست باشد نبود چراغ راهنمایی تقاطع بدی قرمز بود ترمز کردم و منتظر ماندم چراغ سبز شود پلیموس سیاه پر از سرنشینان سیاه پوش کنارم نگه داشت و شیشه پنجره جلوی سمت من پایین کشیده شد یکی از ها به بیرون خم شد و با صدای آنقدر کلفت که شایسته شرکت در شای اماس و اندی بود گفت ما اون جسد رو میخواهیم بزند کنار و بدش به ما و الا قیمه قرمت میکنیم، آبگوشتت میکنیم از شیشه نیمه پایین داده گفتم. حتما اشتباه گرفتین. نمیدونم از چی حرف میزنین. من کارمند بیمه ی نیویورکم. سیاه پوسته گفت. مزه نریز آبگوشت. چراخ سبز و تقیب و گریز آغاز شد. این اولین تعقیب و گریز من با ماشین در تمام طول عمرم بود. زن های گریز زیادی توی فیلم ها دیده بودم اما خودم هیچ وقت در گیرش نشده بودم با چیزی که توی فیلمها دیده بودم زمین تا آسمان فرق داشت اولی اینکه من هیچ وقت واقعا دستفرمانم خوب نبود در حالی که راننده آنها دستفرمانش حرف نداشت دیگر اینکه توی فیلم ها و گریز تا کیلومترها ادامه پیدا میکرد اما این یکی آنطوری نبود چند چهار راهان طرفتر پیچیدم تو لامبارد و ماشین را به استیشنی که پارک کرده بود کوبیدم تعقیب و گریز ما اینطوری ناگهان به پایان رسید. خیلی معیج بود. فقط حیف که کوتاه بود. خوشبختانه چیزیم نشده بود. یک خورده شکه شدم اما حالم خوب بود. ماشین سیاه ها پشت من زد روی ترمز و سیاه ها پریدن پایین. بنا به وعده قبلی هر کدام یک تیزی توی دست داشتند اما من هم اسلحه توی جیب داشتم و بنابراین آزا آنقدر هم که به نظر می رسید خراب نبود. آهسته از ماشین پیاده شدم. یک کالیبر سی و هشت آماده شلیک که توی جیب داشته باشی بهتر است آهسته عمل کنی. زمان در اختیار من بود و اصلاً ای نداشتم. همان سیاهی که قبلاً لب باز کرده بود گفت: اون جنازه کجاست؟ آب گوشت. قیافش عین قلدورها بود. آن سه تا النگ سیاه سوخته دیگر هم همینطور طور. اسلحه را از جیب درآوردم و به سمت آنها گرفتم. حالا اوضاع عوض شده بود. سیاهها سر جاشان میخکوب شدند از موقعیت استفاده کردم و گفتم هیچ خوشم نمیاد منو آبگوش صدا کنین اون تیزی ها رو هم بندازین زمین صدای برخورد چهار تیزی با کف خیابان بلند شد من واقعا بازی را توی دست گرفته بودم البته تا وقتی که پیرزنی توی ایوان جلوی خانه‌اش دوید و بنا کرد به استنتاق که چرا ماشینش رو در داغان کرده ایم. استنتاقش رو با جیغی در نهایت قدرتش آغاز کرد شن استیشن تازه دیروز بهسهخرش آخرشو داده بودم چه که آخر و فرستاده بودم ده دوازده تا همسایه هم ریختن روی ایوان جلوی خانه هاشان و فوری جانب زنک را گرفتند که از استیشنش دیگر چیزی نمانده بود. هیچکس علاقه ای به شنیدن نقطه نظرات من نداشت یک کلمه هم نمیتوانستم به زبان بیاورم. دیدم تنها راه برای اینکه خودم را یک جورهای از شرشان خلاص کنم یک شلیک هوایی است. تیر که در میکردم به خانه می برمیگشتند و یکی دو دقیقه ای فرصت پیدا میکردم تا دوباره بر اوضا مسلط شوم کاری بکنم چون مطمئنا باید هرچه سریعتر کاری میکردم اسلحه را رو به آسمان گرفتم و ماشه را چکاندم كریک چیک کریک کریک کریک و همینطور هی ماشه را چکاندم لعنتی اسلحهٔ اشتباهی را در بودم اسلحهٔ خودم بود هفتیر خالی سیاها رفتن تیزیهاشان را از کف خیابان بردارن زنک هنوز داد میزد استیشنم استشنم همسایه ها وارد معرکه شده بودند موقعیت ناگهان عوض شد شده بود موقعیت بدلم در یکی از روزهای بد بیاریش سیاها دوباره خود را تیغ بکف کرده بودند و داشتن به سمت من میامدند دست کردن توی جیب دیگرم هفتیر پاچوبی را دار آوردم اسلاحهی که گلوله داشت به سیاها گفتم. ایست چهره شامپین نهایت شرور و خبیز به نظر می‌رسید به جز یکیشان که داشت لبخند میزد همانی بود که مرا آبگوشت خطاب کرده بود لبخند پتو پهنی داشت که مثل گردنبند مرواریدی تا بناگوشش را گرفته بود لبخندش پشتم را لرزاند باید گردن را میدید رفقای خیلی خوبی میشدند اشتراکات زیادی با هم داشتند صدای یک نفر را میشنیدم که اینطوری معرفی می کرد. لبخند با گردن آشنا شو از ملاقات شما خوشوختم من هم اگر آنجا بودم حتما اینطوری معرفی می شدم. آبگوشت این گردنه ساملک گردن رفیق من لبخند رفیق گردن رفیق منم هست با صدای واقعی لبخند به واقعیت برگشتم داشت میگفت آبگوشت تو دیگه هیچ شانسی نداری گفتم دارم بهتون هشدار میدم لبخند گفت <تصفيق> وقتی به پا شلیک کردم هنوز داشت لبخند میزد با این شلیک زنی که صاحب استیشن داغان شده بود و همه ی همسایهاش کشان توی خانه هاشان دویدند لبخند هنوز از روی صورت لبخند محو نشده بود اما از یک لبخند گوش تا گوش به لبخند ریزی بدل شده بود شبیه لبخند پیرمردی که دارد هدیه یک کریسمس کوچکی از دست یک بچه می گیرد. تیزی آهسته از دستش افتاد لکه خون کوچکی به شلوارش وصله شده بود که داشت بزرگ و بزرگتر میشد گلوله صاف به پاش خورده بود تقریبا ده سانتی بالای زانوش سوراخی توی پاش درست کرده بود آن ستا سیاه دیگر هم تیزیهاشان را انداختند لبخند گفت گندت بزنن آبگوشت تو به اون خالی منو زدی این معامله اصلا به پنجاه دلارش نمیارزید به ما گفتن به محض اینکه تیزیهامونو رو رو کنیم جنازه رو تحویلمون میدی گوه بگیرد یک گوله چپوندی تو پای من وقت نداشتم دلداریش بدهم قبل از این که پلیس بیاید و قائل را فیصله دهد باید میزدم به چاک خب ماشین خودم که از کار افتاده بود و فقط یک ماشین بود که هنوز کار می کرد. ماشین آنها. گفتم تمومش کنین. همه حالا نفس ها رو تو سینه حبس کنین و از جاتون جمع نخورین. خودم بهتون میگم کی دوباره نفس بکشین. همه که نفس عمیقی کشیدند و توی سینه حبسش کردند. به سمت ماشین داغان پاچوبی برگشتم و سوئیچ را برداشتم. در حالی که اصله را سمت آنها گرفته بودم. هشدار دادم، نفس ها تو سینه حبس باشه. دور زدم، رفتم پشت ماشین. می میتوانستم آن چهار تا سیاه متشخص را ببینم که به خاطر حبس نفس به درد سر افتادند. در صندوق عقب را باز کردم. گفتم، آزاد. نفس هاشان را آزاد کردند. لبخند گفت، قصفت، کسافت، کسافت. گفتم بیا اینجا نظر را بردارین. با به آنها اشاره کردم و آنها به سمت من آمدن تا جنازه را بردارند بذارین صندلی عقب ماشین خودتون به دو وقت ندارم لبخند هنوز داشت لبخند میزد رنگش کمی بیشتر پریده بود اما هنوز میشد یک لبخند حسابش کرد نزدیکترین توصیفی که میشد برایش پیدا کرد این بود که حالا یک لبخنده فلسفی شده بود گفت کسافت <تصفح> اول با اصلاه خالی منو میزنه و بعد مجبورم میکنه نفسمو تا حد سرگیجه تو سینه حبس کنم و حالا ماشینمو میدزده دور که میشدم هنوز میتوانستم لبخندش را ببینم و تنها یک چهارراه دور شده بودم که یک هو به چپ پیچیدم بلوک را دور زدم و برگشتم به صحنه ماشین در و داغان پاچوبی و آن چهار تا سیاه خبیز. از پشت سرشان درآوردم همانجا ایستاده بودند و زر زده بودند به مسیر رفتن من بوغ زدم سر برگرداندند حالت چهرهشان هنگام دیدار دوبارم را هرگز فراموش نمی‌کنم آن ستا که زخمی نشده بودند دوباره تیزی به دست گرفته بودند مراکه دیدند، تیزی ها بی اختیار از دستشان افتاد کفه همان خیابان که حالا خانهشان شده بود به می رسید که آنتیق ها دیگر هرگز نمیتوانستند قیم قرمه درست کنند یا حتی اصلا ریشی بتراشند روزگارشان سر آمده بود سیاهی که سوراخ گلوله توی پاش داشت که دید با لبخند پتو پهنی چراغ داد گفت که بازم آب دیگه چی شده؟ اومدی تنبون از پامون بکشی بیرون؟ آن ستا سیاه دیگر که این به نظرشان خیلی بامزه بود، زدن زیر خنده، خوب خیلی بامزه بود، خودم هم نتوانستم جلوی خندم را بگیرم، گذشته از اینکه که میخواستن مرا تکه پاره کنند، آدم خوبی بودند گفتم، نه، تنبوناتون را نگه پیش خودتون لبخند گفت چه پاپا نوئلی از گفتم از کی پول گرفتین جسد و از من بقاپین؟ فقط همینو میخوام بدونم لبخند گفت چرا زودتر نگفتی؟ گندش بذاره خیلی ساده است یه یارو با یه گردان به کلفتی یه تانه درخت و یه عروسک سفید زرق و برقی که آبجو میخورد اما شاش پس نمیداد اون همه آبجو رو کجاش میریخت؟ رئیس اونا بودن اما حالا تو رئیسی گفتم ممنون لبخند گفت گندت بزنه آب گوشت قابل نداشت اما دیگه به من شلیک نکن من واسه گوله خوردن دیگه پیرم تو که هم نمیخوای نه گفتم نه من یه اقاب تنهام این بار که راه افتادم همه برام دستگان دادم